جمالت آفتاب هر نظر باز در صوبی روی خوبت خوبتر باز امای زنف شاید شهبرت رو دل شاهان آلم میبتر باز کسی خوبتر یه زنفت نباشد چو زنفتر در همه زیران در باز دلی کو آشگریت نباشد همیشه قرده در خون جگر باز خودا چون قامزاد از کشا دل این من پیشش سپردم. چه تو تراش جان من اون مرا از تو هردم تازه مرا از تو سردم تازه مرا از تو کردم تازه عشقی, از تازه عشقی. هر ساعتت حسنی دیگر با به, مشت... به جان مشتاقوی تو ثابت فرود در قالب مشتاقال نظر. نه. راست کنم که این در نسخه مرحوم دولتخاندری 5 تا اول همش جمالش افتاد و هم نظر بود. خیلی خوبش خوب برواد. خوب خوب یعنی بصیره قایم. و بعد از بتاق غمزت ناوک فشان ناوک فشانت چیز دوم تخت میشه و این دهت اوزه تا نسخه یعنی دو و و چهار و پنج و شیش و و و نه و ده و یازده نسخه است که فقط سه تا نسخهش یا چهار تا به سیغه دو پمچخصه باقی به سیغه سه پمچخصه و به هر حال این مسئله مهم نیست اون که اینجا توضیح باید بدم راجب ناوکه ناوک یه نو تیه چنان که میدونید با بود ولی همونجوری که حالا انواع احسام توفنگا داریمون نمیدونم های مختلف قدیم هم همینطور بوده ما فقط میدونیم تیر منداختن و کمون بود و تیر بود و تیر منداختن ولی اینا انواع احسام داشت و یک کتاب فقط هست به نام آداب الهرب و شجاع. فارسی البته اسمش عربیه و در باب همین تکتیک و استراتژی و جریانات پروت و رزنه در ضمن سلاح هارم یکی کی حرف سده و از جمله مثلا تیرهایی که میاندازند، انواع احسام داشته به تناسب کاری که از تیر انتظار داشتن و مثلا دوشاخه بودن پرگبیدی بودن و احسامه چیزها داشته بیشتران برای این بوده که حتی برکتر صدمه رو وقتی رفتن بزن اما ناوک یه در حیرت نمیشه گفت تیره به اون معنی یه چیزی بوده مثل جوالدوز چیز جو سوزن خیلی درشت و این رو گاهی اصلا توی کمون نمیذاشتن یک چیزی داشتن که به اون گفتن توفک بشه کلمه توفنگ فعلی از همون کلمه تفک گرفته شد یه نهی بوده نهی نسبتا نازوک اینو میذاشتن توش و به قبط نفس میکردن این پرکاپ می‌شد. معمولا از فاصله نزدیک عرف گیری کرده، معمولا نمی کشته بلکه صدمی می و معمولاً اینو برای شکار جانورهای کوچیک و مثل پرندکان کوچیک گونجش تبوتر امثال اینا به کار می بردن هم تو همین تفک به, به جای ناوک مهره های سربی یا گلی یعنی سنگریز گلی یا سربی زشتن می و مثلا اینه قضی رو که به کبودر خورده کبودر یه لحظه گیش میشوده میفتده پایین و کافی بوده که سیاد بهش دست پیدا کنه بگیر برحال ناوک علت اینکه که موجه رو هم به ناوک تشریح میکنن همینه یه چیز نازک تیز کوچکی بوده است که معروف به تیر ناوک. میگه دلا بوتا چون گمزه از ناوک فشاند دل مجروح من پیشش ش سپر بازم برای دل که وسخون نداری یعنی این این تیر خیلی تیر موثری در حیات ندید دیگه از این غزل چون غزل ساده است و غزل بعضی غزل خیلی فوق‌العاده است این است که اثر گرفتاری زیاده این است که از این میگذاریم و بیا صبحون امشب ما کتاب آقای شعابی هم کردیم برای اینکه من نرسیدم به خانه جایی بودیم با آقای شعابی و نتیجه این شد که دریای این خودم رو بردم و حالا مجبور شدم بله، بفرد صوفی بعد به انداز خورت نوششباه و نه اندیشه این کار فراغ نوششباه بله، نه یادش وقت نسبتاً طولانی برد باشه که کانولاً آدم حضم بکنه که ورنه یعنی اگر صوفی باده به اندازه نخورد صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش یا صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد ورنه صبر برای که درست قبلی تو ذهن جا بگیره اندیشه این کار فرام نششباد. کون که یک جرعمه از دست توانت دادن دست با شاهد مقصود در آقوشش با بست با شاهد مقصود در آقوشش با اینها گفت خطا بر قلم سون نرفت آفرین بر نظر پاک خطا توشش با شاهد, شاهد ترکان سخن مدیان میشنود شرمی از مظلمه ونه سیاوش سیاووش کشوا سیاووش از نازنامه خون اینه سیاووش از آینه داران خط چشمم چشم از آینه خط و لبم از بوسه و بیان بر او دوشش وا بخونید این ترتیب بعد بخونید چشم از آینه داران خط و فالش گشت لبم از بوذر و پایان فرو دوشش پا همین که آینه دار یعنی دیدر وقتی آدم کسی میذینه تصویر طرف کش مجسم میشه دیگه آینه دار معنی مشات است معنی معنی سلمیه کسی که آینه دره و آرایش میگه چشم من آینه دار خط و فالوش شد این تونستم ببینمش لبم از بوسه روایان برای دوشش بازی مرحله بعدی ایست که پار از دیدار ساده به بوسه کنار رو کشن بخ گرچه از کفر سخن گرچه از کفر گرچه سخن با من درویش نگفت نگفت گرچه از سخن با من درویش نگفت جان فدای شکرین پسته خام نوشش مست نوازش کن مردمدارش خون عاشق به قدر گر بخورد نوشش باد به غلامی تو مشهور جهان شد حافظ حلقه بندگی ظلف تو در گوشش بار با. با. هم اولی, رو، هم اولی رو بعد هم من هنوست توضیح نزم ساب میکرد <تصفح> <تصفح> بل بعد کنم که این مسئله اول مسئله نگه داشتن اندازه ستر. هر کار در هر کار برای که وقتی هر کاری از حال خودش از اندازه خودش به در رفت خیر معقوله حتی اگه نواز کندم ها یک کار عبالت هر به کلی شبان روز شما رو مستقرق بکنه واقع یکی دیگه باید نوم بیاره دارخانتون بکنه به خصوص وقتی که کار به جاهای حساس بکشید که این می بیاد خب تا یک حدش موجب سرخوشی و لذت از اون که بال موجب عربادی کردن و دری بری گفتن و سرسدا و رسوایی و برد این است که جیسے اگر صوفی باده رو به اندازه بخوره میشه یه یه یہ هست که چه هم همچین قرب نیست اما خیلی خوب این مطلب رو بیان کردید یعنی گر باده خوری تو باخت رحمتمندون یا باستانمی لال روح و خندان یا کسی باشه که از جمالش بحریه بری یا کسی باشه که از کمالش چیزی درد کنی و ایلیه تا سر گوزه که آخر سر به کوتک و چاهو اینا چه لطفی شو داره گر باده خوری تو با افتقیت مندان خور یا با سنمی لال روح و خو خندان خور بسیار مخور ویرد مکن فاش مگوی اندک خور گهگاه خور پنهان خورو از شاعر ناخان نمیتونم از بله گر باده خوری تو باخرت مندان کور بله گر باده خوری تو باخرت مندان کور یا باستانمی لال روخ و خندان کور لال روخ و خندان کور بسیار مخور ورد مکن یعنی دائم فاش نگوی آش یعنی آشکار سرگی رو فاش کرد افشاگری افشاگری میینید ایرا همه اکسش رو تو اون مصره میگه بسیار مخور اینجا میگه اندک خور ورد مکن اینجا میگه گهباه خور فاش مگوی اونجا میگه پنهان خور حسیار مخور ورد مکن فاش مگوی اندک برو گهگاه برو پنهان میکن پنهان کردن پنهان به از عبادت فاش این تلیبش. هیچ لطفی نداره که آدم مید. کار زشتی رو که میکنه کاری که گناه در نظر میاد افتخارم بکنه یا الان روسل اشهاد همین که الان نمیزنن چونها شیشی مشروب با تو اتمابیلتون نباد میشه دیوان لیوان مشروب تو دست دستون نباد میشه. اینجا که دیگه اون حرفانی که تو کتاب حاجی بابای اصفهانی نوشته که مال اون کیه جیمز موریه نوشته که فرق ما از زبون حاج بابا میگه میگه فرق ما ایرونی با فرنگی ها اینه که ما مشروبات هم. ما مسلمان ها با فرنگی ها اینه که ما مشروعات الکلی رو حروم میدونیم زیاد میخوریم اونا هلال میدونن کم میخورن <تصفیح> <تصفیح> <تصفیح> <تصفیح> بچ صوفی هر باده به اندازه خورد نوم شش بر نه اندیشه این کار فراموش شد اینجا پس علی دو علی مسئله گذشت یک آدمی که از سر یک جر امیل به پوانه بگذره چیز نرشته باشیه گفتن که عرب آمده بود سر صفره ماقیه قضاها میخورد و اون ها راسم بوده خصوص تو عرب نوازی اونا کسی مومده به فرما میزدن دیگه تعرف میکردن نشست به قضا خوردن یه لغمشه که برداشت یه موتوش بود بفنه بفنه زودتر پاش بزنم سلامون رو اون لغمه رو یه مو توش بود ما آبیه گفت برادر یا اخل عرب اون این لغمه موه اون مو رو خواهش میکنم بکنم این لغمه رو گفت زمین بلند شد اوه چرا رفتی؟ او من سر صفحه کسی که بتونه مو رو توی لغمه آدم ببینه خزن <تصفيق> وان که یک جرعه می از دست توانت دادم. یعنی لاقل اینقدر نظر نباشه یک چیز بسیار ناچیزی رو بتونه از دست بده، همین دست است که میگه اگر شراپوری جرعی فشان برخواد توانایی نداشته باشه که سهم خاکم بدی که یک جرعه می از دست توانت دادن دست با شاهد مقصود برای خوشش آدمی که بتونه از سر یه جور می بگذاره امیدوارم که همیشه به مصوبش برسه و با شاهد محسوب دست در آخوش کشه حالا بیتی که خیلی اسباب دردسره سره و اغلا برای زدن با آدمو ارز کنم که گاهی محق جدن و اینا می ای این همین بیته پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت. آفرین بر نظر پاک خطا ظاهرش ظاهر بیت به نظر میاد که یعنی خطا بر قلم سن رفت پیرما گفت خطا بر قلم سن نرخ آفرین بر نظر پاک خطا خوشه شد با خدمتون ارسان حالا اول دلایل مربوط به اینکه خطا بر قلم سن رفت و میگم و توضیحات چی میدن فعدم نظرگیه طرف که عکس این نظر دارن و طرز توجیه شده صوفیگیه به دلیل اینکه معتقد بودن که طرق الوصول الله و عدد انفوس خلائق راه های رسیدن به خدا به تعداد افراد مردمه یعنی هر کسی به جای خودش و به براخور احوال خودش میتونه یه راه با خدا داشته بوشه بنابراین در مراجاتهاشون و در سخنگفتنهاشون با خدا یه پای میکردن یه حرفایی میزدن که اهل شهر اینا رو به هیچ رجل نمیپسند دیدن و رد میکردن نمونه خیلی خیلی سادهش که اغلب دوستان توستانی که لعقل میان سالن اینا تو کتاب های درستانی باید دیده باشم قصه موسا و شبانه دید موسا یک شبانی را به راه او همین گفته ای خدا ای اله تو کجایی تاشدم من چاکرت، چارو قد دوزم کفش داتی چارو قد دوزم کنم شامسترد دستکت بوسم به مالم پایه کرد وقت خواه باید بروبم جایه کرد جامت دوزم شپش هاید کشم سرش بذاره به جوره نمیدونم دیده بودین این منظره که بزرگ سر به خصول است خیلی هم سه از چیزها بنده پاریس بودن در سالهای دهه بین 80 و 90 در تمام راروهای مترو سپری مخصوص برای دفع شپش اعلان میشه یعنی باید چهار پیش داشتن یا چی پیش سر که سپری درست کرده بله و کار بسیار بسیار ساده ی دفعه هم بگم آنکه اینجا رسید این است که فقط سر رو چرب بکنم با یه نوع روغن چرب چرب کامل به دلیل اینکه این, این شپش زایده رشک، یعنی تخمشه ولی خودش میمیره موندش زیاد نیست. و این رشت تقمه به بونمون میچسبه و یه منافذ کوچکی داره این تقم که از اونجا اکسیژن میگیره و نفذ میشه وقتی چرب بکنین اون منفذ بسته میشه و این تقم خفه میشه یعنی چیز حیات از یه سلپ میشه وقتی فنوکرگی همه میریزه یعنی یه 24 ساعت اگر سر رو چرب بکنن کاملاً بعد دیگه شیپیش ندیره و این این روش رو قدما می دونستم عثمان مختاری جمعی که من یه گلام خریدم گلام سیاهی آوردم کونه و این خیلی سرش به خانه بردم و سر چرک کردم برش چرک کردم پورا. برای همین کار برهای حارس منم که میگه خدا رو حالا زن‌ها تو خونه اون وقتا من خیلی دیده بودم که سر بچه‌ها رو می‌ذاشتن مثلا دختر و بچه‌ها پشت سرشون موهای انبوه داشتن که سرها رو سرشونو ماشین می‌کردن یا می‌تراشیدن مقدار زیادی از این آفت به خود دهت ده اینکه بچه های از بود که خدا احت مشود تا اینکه بچه‌های درستان تو که اول درستان نمی‌ذاشتن موی سرشون گران چه یکی از دلایلش همین بود که بیش نزه ولی دختر بچه‌ای که نمی‌شد سرش تراشید که شما یکی می‌ساختید بله. به محض اینکه یه دونش رفت تمام قصدیه تخم میریزه بود ادامه عرض کنم که باید دست جمعی این مبارزه بشه با هاش بنده یاد که وقته بودم طور جنگ بود یه باسم خوشگل میخوشتم یه پارتو خیلی قشنگی داشتم درست کرده بودم اینا سوار اتوبوس شدم وقتی مادم میدونم بیرونم از این جخه خیلی من ایش چه پیش داره قشنگ میاد بلا حال پ نب داشت من که روی یخه پالتو نمیاد که همونجا تو اتوبوس یه سر چشم ناط رو رفته بودیم تو اشغول شده بود و رسیده بود به اون تو تخ میریخت و هیچی گرفت. هر حال ارم سر میذاشتم زمین توی میخواب اون بچه چرا رو سرش می داشت مادر میزانون شبدوننه دونه این رش باوش توشار رو بله. تو تو دوتا ناخونشون دو اینجایی و سلام میکرد میگه که جامت دوزم چه فشهایت کشم شیر پیشت آقارم ای محتشم چه و چه و چه که زین نمت بیهوده میگفتن شبان گفت موسا با کی هستی ای فلان گفت با که ما را آفرین. این جهان و چرخ از او آمد گفت موسا های خیرستر شدی خود مسلمان ناشده کافر شدی گر نبندیز این سخن تو حق را آتشی آیت بسوزد سر دهن تو بود این غلط ها چی مرد که چی میکنی بود گفتی یا موسا دهانم دوختی و از پشیمانی تو جانم سوخت سینه ها بدریدو آهی کرد سرنهادن در بیابانی را وحی آمد سوی موسا از خدا بنده ما را چه کردی شده تو برای وست کردن آمدی نی برای وست کردن آمدی برو زود پیداش کنو اینا چون که موسا این اطاب از حق در بیابان از پی چوبان دارید آقابت دریافت را و بدید گف مجدده که دستوری رسید دستوری یعنی اجازه روی هم یه شان کیس دستوری یعنی اجازه گفت مجدده که دستوری رسید هیچ آدابی و ترتیبی مجرور هر چه می‌خواد در سنگر بجاست منشایی منبعی داشته باشه نداشته باشه مسئله مهم نیست مسئله مهم این است که مولانا علی رو که بین این وجود داشته که یه چوبان با همون الفاظ جامعه دوزم چه پیش خواهد باشن میتونسته با خدا مناجات کنه این مهم و نظاهر این رو ما بسیار می‌بینیم. مقادیر زیادی قصه از عدتار در مصد نویهاش منغوله هست و مثلا فرض کنید که میگه که یه مرد ای، اول دیوانه که میگه مرادش مجذوب و کسانیست که در حال ارخانیه چیز بیاره. میگه دیوانه توی مسجد مناجات میکرد با خدا که ای خدا، ای خازی الحاجات ای ارحم الرحمین. من که از عشق تو دیوانه شدم توی سر بیابون گذاشتم پاره و پوره و برهنه و گرسته و بدبخت ولی سر هم برهنه از پر یادتون که برهنه بودن سر نشونه اصلا بی و بی آبرویی بوده حیبی بد بود نسید و به همین دلیل آدم آدم, آدم, آدم عرضش و آدم چیزی رو باشید بی سروپا سروپا یعنی لباسی که از سر تا پا رو بگیره و به همین دلیل می که با چاست سروپا مرحمت کرده فلان کسی یعنی یه لباس از سر و بی سروپا یعنی کسی که تو سرش برهنه این خیلی بعد بود یه حالا به هر حال خدا من که بدبخشتم بیچارشتم از خزانه قیبت لطفی بکن و یه امامه برای من بترست یه رندی اون بالای بام پسجد بوده میبینه این حرفای این و این ها هم داریمش کونه و گونیپاره و رو از این چیزا بوده درست میکنه و از اون باله دی بونه به هوای اینکه که از عالم غیب رسید میده و میاد و نگاه میکنه و هم نگاه میکنه این چیزه گونیه و همش خواب و اینا توش کردن چیزه موزه این پرانه بالا میگه این امکلا رو سریعی بسیار <تصفيق> <تصفيق> و باز بار دیگر میگه که درویشی دیوانهی تو خیابون میرفت دیدهش که غلامان خیلی ذرین کمر با لباس های خیلی زیوای محملی بسیار آراسته اسباه تیزتک سوار اسباه در نهایت آراستگی در بیست غلام با تاخر ترین لباس فاخر ترین زین و یراق دارن میرن گفتش که اینا کی یکی سوگفت ها اینا رو نه گفت اینا گلامان امید شهر هن. حالا وزیر شهر یاد یا یه خانم جا اسم بره خانم متشخصی نسلن یادم نیست و احال یادن دومکلوختی رو اسم بره که اینا گلامان اونه، مثلا فرض کنید که عمید خراست باید فرشه میکنه با آسمان یکه خدا بنده اداره کردن از امید خراسان یاد بگیرم <تصفيق> از این غویل مسائل بسیار هست و اینا رو اینا روی،, روی گستاخی یا بدعقیدگی نمیگفتن روی عشق و روی سمینیت میگفتن در ناصر خستوق داریم این مسلح هست مال او غیر از اون که کودر راست خوبی هم فتنه هست توست و دی از فرس ندوان هم چخیدن لب و دندان تلکان خطا را این توبی نبایست دا که از دست لب و دندان ایشان بدن دان دستولت باید گزیدن اگر ریگی به کفش خود نداری چرا بایست شیطان یه این قصده مفصلیست، است شهست بیت و معلوم نیست مالا ناصر کستو بشه منصوب به او هست دلیش همین شیعه بند تومونی و های شایگان و شعرهای سوس خیلی توشه و به مقام عددی ناصر خسرو نمیخوره ولی اینی که من میخونم الان مسلما مال ناصر خسروس میگه بار خدایا اگر ز خدایی بار خدایا اگر ز خدایی تینت انسان همه جمیل سرشتی تلعت رومید و چهره هبشی را مایه خوبی چه بود و علت زشتی از چه سعیدو افتاد و از چه شقی شد زاهد مهرابی و کشیش کنشتی رحمت منعن چراست دریا دریا مهنت مفلس چراست کشتی کشتی بهت امال ناصر مسلما مسلمن و به هیچ وقت حرفایی که میزنید شدید تر از این چیزی که خاژه حافظ میگه نیست بنابراین اگر فکر بکنیم که میگه پیر ما گفت خطا بر قلنستون نرفت و خطا خوشی خطا بر قلنستون رفته اینا چیزهایی بوده که صوفیه در مقام عشق و مقام مناجات با هفته حالا از این شکلها و شکلها اطراف می کرد اما نظر اکس قضیه این است که بهترین این دقیقترین موردش هم هوای متحری این آخرها آیت الله متحری شده و شیخ مرتزای متحری در کتاب تماشاگه راز نوشته اونجا میگوید که حافظ یه شاعر عارف و اگر این رو قبول بکنیم عارف همه چیز دنیا رو به بهترین صورتی سر جای خودش و شعر شیخ محمود سبشتری در گلچنگ راز شهادت میارید که جهان چون خط و پال و چشم و ابروز که هر چیزی به جایش خیش نیکن. و بسیار هم فلاسفه، هم اهل شهر، هم حدیث، هم صوفیه، این تز رو که در دنیا همه چیز سر جار خودشه و هیچ می مسلحتی نیست و هر کدوم رو ما به خودمون به سنجیم ممکنه که متضمن خطا یا چیز ببینیم در حالی که در اساس سن خدا، حتی به بحار میگه آن که تو بینی که همی هست بختیار آن که تو بینی که همی بختیار نیست هر به نزدی که هر ویزفت برابرم یک سرمون فرق در این گیر و نیست عدل خدا را تو به میزان خود مسنج کفه عدل این کلوی خواه سار نیست شعر بحار امار پیروز بنابراین قده ای هم به این فرض بودن و بعد میگه که پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت یعنی خطا نرفت واقع و آخرین باید بر این نظر که پاکه و اصلا خطا نمیبینه خطا پوشه یعنی خطا رو نمیهرچ که میبینه جز جز ثواب و جز درستی نیست حالا مسئله اساسی درست در تفسیر حافظ همینه که بابایی که خوره میگه بله آها حافظ هر میگه می همین آب انگور تخمیر شده است لافق اونه هم که آخونده متشرعه میگه که نه هر جای که می گفته شده شرابن تحور است و حال خلصه است و جذبه حق است و بعدم تفسیر کرده بود یه بنده خدایی که می دو ساله و محبوب چهارده ساله اولا گفته بود که چهارده ساله ده سال یعنی چهل سال و محبوب چهارده ساله خود پیغمبره که در چهل سالگی به پیغمبری محبوب شد چهارده دعی وضافه چهاره کرده و چهار زد ده و چون پیغمبر احکرم در چهلی سالگی محبوب, محبوب چهاره ساله که اونه می دو سالم حالا یادم نیست که یه قسمتی از قرآن در دو سال اومده یا دلیل دیگری به هر حال می دو ساله هم یه چیزی از این قبلیل درست کرده بود و شیخ مهمرزای قومشهی جد به پدر این آهای مهدی الهی قومشهی استاد دانشکته معقول و جد این دفتر قومشهی که الان هست الهی قومشهی شیخ مهمرزای به شیخ م می‌گفت و همون قرآن قسم که خواهج حافظ مرادش از می دو ساله شرابی بوده که دو سال ازش گذاشته محبوب چارده سلام دختر خوشکل چارده <تصفيق> <تصفيق> این است که حافظ اشکال کارش این است که هر کسی لباس خودشو تن حافظ میخواد بکنه. حافظ هم صحبت می‌کنه از آب انگور روز در کسب هنر کوش که می خوردن روز دلتون آوینه در زنگ ظلام اندازه میگه روز پرخوردن قلب سیاه آن زمان وقتمه صبح بروغ که چرخ گرد خرگاه و فوق پرده شام اندازه شب باده با محتسب شهر و چیز ها که خورد باده اتو سنگ به جام اندازه. و آدم ناباب همچرا این که یه جذبه الهی که شب و روز نداری بنابراین نیشه پیدا کرد شواهدی که دید توی ایکی از قطعاتش هست دختر رز چند روزی شد که از ما گم شده است بشتویده ساک نام پوگ رندی بشتوید بعد میگه که با با دیگه پلخ تیز خوشخواه و رستبک گر بیابی دست توی به سوی خانه حافظ برید این که دیگه شراب روحانی نیست که اما داره که ساق آبد حجامی زن شراب روحانی تا مگر بیاسا زین حجاب جسمانی زکوب یه مغان رحمه گردان که آنجا فروشند به مشکل گشایی. میکشیم از قضعه ب... لاله موهوم مهم کشم بعد دور که بی مطرب و می مدهوش شواهد بسیاره است و حقیقت غزیه این که این آقا آقای خاجعافز مثل همه باها اول به دنیا آمده بچه بوده ببخشید خونداخش هم خراف می‌کرده بعد کمترم راه افتاده بعد بزرگتر شده طفل ممیز شده بعد دوال جوان شده بعد جوان شده با همه کماخما و گرفتاری ژاپنی دنبال دوست هم بوده یعنی همه جا سر می که سر هد به درس ها جا راه باز کردن چون شناسای تو در سومه یک پیر نبود همه جا میرفته میگشت دنبال می‌کرده تا از ژاپنی همینطور بوده بنابراین همه این مراحل رو از یه روز میگه حافظ چه شد در اخ شیخ ورندست و نظر باز بس طوق عجب لازم ایام آموشه بعدم کم کم میاد البته هیچ وقت هم آدمی نبوده که شکولت کشی از میکده بیاد بیرون که دست باشه بگیرن جنازه شو بگیرن در کنش بندیزن چنین کسی حافظ نمیشد که یا ارخور این شو همه این جماعت هوملس که نمیشه یا بونه این حافظ نمیشه و با... بعدش هم میگه چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون شو رندی و حوصناکی در عفوز شباب براه آدم بود مثل همه آدم و همون روش رو تویی کرده منطقه فرقش این بود که لحظات زندگی خود ثبت کرد تو این شیرا. یکی رو در جوونی گفته، یکی رو در پیگی گفته، یکی وقت بودی که دست زنش آهاتش تلف بوده، یکی وقتی گفته که به عکس خانون بزای خاطر اون رو جلب کرده تر خشکش میکرده در نگهداریش داریش موشش میکرده فرم میکنه این مسائل هست اینجا باز بستگی به این داره که شما جز کدوم گروه باشد و خودتون عقیدتون چی باشد هم از اون طرف میشه گفت هم از اون طرف و خصوصیت حافظ همین ایهامه که الفاظی به کار ببره که درست به همین ترتیب بشه توجیحات دو دور کرد و گاهی حالا میرسیم میگن به هر جهت این دو صورت توجیح این ده که ارز کردم یکی اون یکی بله پانک به من یکی چیزا نمیتونست دیاره چونم و بحثیدی بینداری که خودم چه ارگیز بدارم من ارگیر دارم که حافظ قلندر بوده و ارز کنم که هیچ عیبی ای از اینکه چیز کنه دلایل بسیار زیاد دیگری هم هست یکی مثلا فرض فرمید که در قرآن سریحا آمده که این آسمون خرک کرد این ستاره ها رو برای زینت آسمان دنیا نازدین نخفنه از دنیا به زینت الکباب که کوه مثلا کوهار صورت میخ بر زمین پفتیم برای اینکه تکون نخوره و نل جباله اوتاد سریحا و راجع به آفرینش هم همون افسانه اسرائیلی آفرینش رو با صورت مختصری در قرآن هم آمده حافظ میگه چیست این سقف بلند ساده بسیار نخش زین مهمه هیچ دانه در جهان آگاه نیست قبول قبول داشتون مطلبو که دیارش مهمه نبود نظاهر این هست اما حقیقت مثلا باز خود خارج پرسید بله گفت یه یک کسی پرسیده بود که آقا بلکره کشتی شکستگانیم یا کشتی نشستگانیم ای بادش مرته برخیست جواب بابا نوشته بود که بعضی شکسته خوانند برخی نشسته دانند چون خارج نیست اینجا مزرور دار بارا <تص> بس اینه که باز این حرف بنده میشه حرف خارج نمیشه و کلام خارج کجا حرف مفت بنده کجا نن ربابه کجا نقمه رباب کجا <shocked> بخ خب پیر ما گفت خطا بر قلم سون است آفرین بر نظر پاک خطا خوشش با سمید نه خارج نیست در فارسی در, در زبان فارسی همیشه میگفتن مسلمان به خلاف عربی که میگفتن مسلم نه قفل در زبان بله بله بله نه در زبان موسا بوده, بر بله بله. بر بوده برای اینکه ما عقیده داریم که هر دینی هر دینی پیش از اینکه نسخ بشه در دوره که حقانیت داشته اسلام و دلیلش این است که از قول ابراهیم نقل میشه در قرآن انی، این حرف ابراهیم نابوده دار. انتی وجد و جیل لذی فطر سماوات و الارز. بعد از اینکه میگه سه تا راه دارم، من گفتم نخوش کن، نخودال من هم بعدی تو نه، این که کرد دادم هم بعد ماه دارم، تو فهمیده تره. بعد خورشید دارم، تو فهمیده بعد از اینکه همه اینها ریکی کرد، که هر بعد گفتم انتی وجد و جیل لذی فطر سماوات و الارز. من روی خودم رو به طرف کسی کردم که آسمان ها و زمین رو حل کرده هنیفن مسلمان و ما انمه در مشکی حنیف هنیف هستن و مسلم هستم و از مشکی نیست. بنابراین این, این،, این مثلت در کتاب های کلاسیک حدیث و تفسیر و کتاب های دینی هم بسیار گفته شده که هر قومی رو بیروبان هر قیرنبه رو در دورانی که دینش نسخ نشده بوده بر توسط توسع مسلمان و مسلمان شایگان این است که تکرار بشه برکیز در یکی از عیوب شعر رو بهش میگن ایتا ایتا یکی از عیوب شعره و شمس است در الموجم که علاقمند کل به این مبارس هستیم کتاب الموجم شمسدین محمد امغی فرازی رو بگیریم بخونید یا لاعقل به نظرم یک کتاب عروزی نوشته من الان اسمش یادم نیست دکتر سیروس شمیسا که وقتی شاگرد بنده بوده الان جز استادای خوبه کتابم می امسه مرتب و کاراش خوبه به خصوص متخصص عروض و بدی و غافیه و صناعی شعری از خیلی در این زمینه کار کرده حالا میگم دیگه دارم میگم که مگه میخواد کل اینا رو به اونها رو جوب کنید برای که گیرم یکی رو من گفتم باقیش چه میشه باقیش هم باز میمونه دیگه بهترین اینکه که سرچشمی دست بده ولی شمسه است یکی از عیبهای شعرم که ایتا و ایتا این است که یک کلمه به صورت قافیه دو یا چند بار تکرار میشه در یک منظوم و این رو هم بر دو قسم میکنه یکی ایتاع جلی و یکی ایتاع خفی ایتاع جلی اون از که کلمه تکرار شده خیلی نزدیک باشه و طوری باشه که با نگاه افراد هم متوجه بشه که این کلمه مثلا سوید باید باید تکرار بشه این همون قافی این رو میشه کن جلی که البته به بعد پد ایتا خفی این است که در منظومه طولانی بعد از مدتی که نسبتا از یاد خواننده رفته که این قافیه قبلا آمده دوباره تکرار بکنه این بازگشت ایتا خفی که البته خفیفتر از ایتا جره برای رفع این عیب می آمدن تجدید مطلع می‌کردن یعنی در یک قصده یه قسمتش میگفتن؟ بعد وسطش دوباره یه بیت مسرع یه بیتی که هر دوتا مسراش قافیه داره میوبردن به صورت مطلع و اینوش میگفتن تجدید مطلع مثلا اون قصیده سعدی به هیچ یار مده خاطر رو به هیچ سیار که بر رو بر فراخ از تو سیار میگه میگه سی بیت بعد دوباره مطلع و تجدید میکنیم که کجا آهمی روزان شاهد شکر گفتا چرا آهمی نکند بعد دو چشم من رفته در حقیقت مسته میگه دوباره قصیده از تجدید بعد از تجدید مطلع اگر آفیه ای رو در تیکه اول قصیده کار برده باشه در تیکه دوم بکار برده دیگه ایتا نیست برای اینکه اینا دوتا چیز جدا ساکشه این ایتاع رو در اصطلاح توی انجمان و در اصطلاح غیر علمی شاعران همی گفتن که خوافی شایگان شد و شاه ترکان سخن میشه میشنود شرمی از مظلمه یه خون سیاه بوشش قصه که روشن چیه سیاه, سیاه بوش سیاه کیکاوست بود معروف بود به اینکه این جوان تاریخ تاریخ تا همین دلیل زن پدرش آشقش میخواه گرفتاری و داستان و مدبختی زیاد بگه میخواه و تختیرش حالا جاش نیست باید رو بیوفرمشان ها شد دوستی مجبور میشه گلمش میره از منفر پدرش میره بیرون و برای حفظ خوبش یعنی قبلا قرار با تورانی ها جنگ کنن و قرار هم چه بکنن بعد پدرش میگه که ما سوال بکنیم میگه اگر رفتن اونا سر مرز خودشون رفتن اشتاری نداره بعد اونا رفتن سر مرزشون خودشون هم بیشتاری میکنن روستن همه ها سیاوهش بوده میگه افرازی ها این هیلگر اصفان دلم برار نمیگیره این اون که ما ش چی کار میگه که پنجا تا تا از خیشابندان نزدی که او رو عنوان گروگان بخواه تا ما یقین کنیم که زیر زیر پوشش این تحاظای سل یه آمادگی برای حمله دیگه اون چیز کردن اینا نیست و حقیقتا نیتشون سل هست هم این کار میکنه و یه ازده میخواد و اونا هم میفرستن برای اینکه ایش قطعیقتا قصد هم قطعیق سل داشتن بعد نام اینست روی پدر که ما چنین کردیم تنان کردیم روستن این نامه رو برنداریم برایم برای که میگه که کاخوس آدم دمدنی نزاجیست آدمه چی پندیست و من خودم میبرم برای Do you call the good or good get? آوریان سخن مود دیان میشن سر نیت میذنای یکونش ظاهرا اشاره کاملا به داشتن یواش. اما شخصا کسک را وقتی بافت بود خیلی و دبیش از دوران زندگی حافظ در دوره پادشاهی شخص جا بوده و پسر مبارز محمد مزفری اون مرد شاید سال بودی که حافظ یک کلمه اسم رویه چید جانه برده از او به نام محتصب یاد میکنه و تیرهای جان روز به طرف او به میکنه باده با محتصب شهرنن و ها که خورت بازد و سنگ به یا میگه طریق رندی از محتسبی آمون مست است که در حق او کت این گمان ندارد از این قبیل فرمه محتسب شیخ شد و فس به خود از یاد ببوند خرقه ماست که در کانه خمباز به ما نصور این زیاد و این یه زنی داشته این مبازدتین میگیرن در چه پنگ سال از پختی که ازاره ولی داشته و آدم کشته بوده بچهاش بیترستن که یه روز بکشه کمپلوم میکنن میگیرنه میگیرن و میبرن روی قلعه یه حبسش بازم دست از توحه را نمیدسته تنازار میل میکشن به بشه و بعدم میکشن چپر ندارم بعد شاه شجا میشینه به پخت جوانی بوده بلند آمد و یعنی دوست داشته که زیباییش رو ستایش کنه و اینا راست وقتی که صراغ مصدر تشخیص معنای اصطلاحی دوست داشت از تیم بچم مطلب حرف از این من فکرا نمیدونن اون تو این جواب فکراستم این یه مادر ترک داشته ترک به معنی چش بازونی و از نژاد زرد نه ترک ترکی یا ترک آذربایجانی نه اینا ترک هستند نه بعدها زبان ترکی رو دو رایه شده و کمکم پیش شده نجاتا نجاتی توی میسید پادر ترک نجاتی داشته در چشم و موهای ترکانه داشته یعنی موی ساخت مشکی بسیار زیبای بلند بیافه ترکانه صورت گرد و البته این دو رگاه زیبا سرم میشدند یعنی خیلی زیبایی بوده و یک دفعه مبارزه رو یه صوفی از زمین میگذاره که مبارزتین به یه درامه یک کرده بوده که بعد دیگه این ترک بچه تو رو بیدرد کنند یعنی ساستید و همینطور هم هر حال اینجا شاه ترکان اشاره دوبون بلکه اشاره اول در حقیقت در زیر این ظاهر اشاره می و ظاهرن احتمالن در خضیه جلالدین تورانشاه جلالدین تورانشاه وزبیر ساه شجاع بود مرد بسیار خوبی و آدم درستی جمع های بسیار هم درگاه ساه شجاع کرده بود یک بار برادر شاه محمود در شاه شجاع شورید ساختزیارو بیرون کرد از شیرازو بیرون در تو رفت تا عبرهو عبرکو که شد عبرهو و اینقدر جای پرتیز که هنوزم بیگن رفت عبرهو یعنی رفت جایی که نا کجا آباد برها در اونجا جلد جلدی توانشا دنبالش بود یعنی همه جا سرکتزاری فرو فروگذار نکرد و کوشش های شبان روزیه تورانشاه هم اونجه شد که شاه شده از کرمان و جاهای دیلشکم جمع کنه و بیاد و شاه محمود بگیره و دوباره بیاد به طرف بنشینه و از دو سال این تورانشاه به دلیلی حرض کنم که به زندانی بوده. و اون دلیل این بوده که یه مرد سیدی اتفاقا یعنی حلدی بوده ولی مرد مزفر و به باز بدی بوده یه جا آلی رو. این کسی رو که خیلی خوب بیتونست خط اشخاص مختلف رو تقلید کنه دست مزدی میده و وا می‌داره که به خط تورانشاه نامهی بینویسه از زبان تورانشاه به شاه محمود برادرشان که من دار خدمت رو میرسم و کار درست میکنم چی میکنم نشان اینکه که اون سر و داره با او با شاه محمود و باوست رو میبن این نامه رو میدن دستی کسی و ترتیبی میدن که اون شخص گیر بیفته حتما باید که قصد داشتن که این نامه رو به نظر شاشیزا برسنن دیگه ترتیبی میدن که این این, این پهی که جوری بره که گیر بیافته میگیرن نامه رو در میانن نامه رو خط دوران شاه و خطاب شاه محمود و سری مطالبی که نوشته استادونه شاه جا مرد با تحصیل هم ولاده درس نخونده بود ولی عربی بلد بود که نوشته می‌خونه فارسی خوب یاد گرفته میگفت بسیار آدم باکمالی ده همه اینا رو از حفظ کردن از خود یاد گرفته لو درس تو کتابه بسیار آدم با شک می‌گن که حالا به این سودی به دور میسیاحت پوری این مرد غیر متفکر کلاچ کرده درست و حالا زندانش کنیم تا تا غذایات درد زندان می کنن دو آن یه جایی دیگه آخذ اشاره می ما آخوی که من مصند مصر آخو تو شد وقت آن هست که بدوند کنیم زندان دار اونجا اشاره به یوتوب که عزیز مصر شده بود و عزیز مصر پاچه های مصر نبود عزیز مصر یه مقام اجاری کشکاری چیزه مقام بالایی بوده در اونجا مثل بزارن یعنی که اشاره به هر حال تورانچه رو حبز میکنن و, و شخصوزا یه مقداری فکر می‌کنه و چیز می‌کنه و بعد به نظرش میرسه که قاعدتا تورانچه هیچ نقی در نوشتن چنین نامه‌ای نداره یک. دوبوم اینکه که کسانی بودن که بارها آمدن سعایت کردن و نمامی کردن سخن چینی کردن مایه گرفتن برای جلال دون تورانشا از جمله اون سید میگه اون سیده بگی اینو تا از بشار میزه در زمنم گفتم چون آدم با اون چیز که اینجا ها مزبر، یعنی کسی که خط جلی خط اشخاص تغییر کنه جلی نیست دارین یا نه میگن بله میگه مرکره میارن و این تو این نامه ای نوشتی به کسی؟ میگه بله میگه نامه از زبانی کی به کی نوشتی؟ از زبان تورانشاه پس تورانشاه جهر کردم به شاه چی گفته بود؟ نوسته ای بسه بعد آزادش می‌کنم خب سره بخورده بودیم چرایی بسیارانی اون سید و می میرسونن و اینا این احتمالاً در ضمن این ماجرا گفته شده باشه که شاه ترکان سخن مدعیان میشنه و شرمی از مظلمه یه کنون سیاه یا اشاره به کس دیگری که کشتش داری ماجرا و بیگناه و این به هر حال تعریض به شاه شد شد شاه ترکان سخن مدعیان بعد با حاله که درست هم اونجایی که نسخی دوید خواندری هم نوشته اینجورست یا بوش بخونیم وقت میخوانیم داود، تاووز ولی بله، واقع تر چرایی خودی کار مشکل بکنیم اونجوری باید گذاشت که بچه هم خونه راحت بخونه دیگه چه روز اون دل داود رو یه باید بینیسیم اینکه آبتی جانیم داوده نه، دوتا میگمسیم راحتیست بعد، دیگه تو چیزی نداره چشم از آینه داران خط و پالش گرد لبم از بوزی رو بایان پر و توشش قبلا گفتم گفتم آینه دارد به معمی مشراته هست و این آرائشگرد و اگر چه که سخن من در بیش نگفت جان فدایش چکرین پسته خامشش هم پسته مراد لوده هنشه که دهن ده با تون خیلی کوچک میپسندیدم قدیم با در مقام و مبالغه اصلا می‌گوشتن که اصلا نیست یک کسی می‌گه که, که دیدم دهنی یا رفتم از بود دیدی که به هیچ مرده بودم یا خود خاجه می‌فرماید که بعد از اینم نبود سایبه در جمهر فرد ده تو بر این نصدر خوف استداد جوپر فرد یعنی جز الایت جزداد این جز الایت جزداد رو در یونان قدیم بشونستن اطوم این که حالا اطوم رو اصطلاح جدید فیزیک آوردن اون اصطلاح قدیمی رو آوردن به این اتم که الان هست. و روزی که این اسم رو روزی بود که محتقی بود که دیگه این اطلاع رو نمیشه شکرد یعنی کوچه ترین ذره از هر جسمی رو از هر جسم بسیتی رو که دیگه قابل تقسیم و اجزای دیگه نبود و به همین دلیل ذهنی بود مفرد. یعنی فکر که مثلا آهن بسیطه یک جسمه و دارای ذرات به این ذرات اقلن بلخواه به جای میرسه که دیگه نهشه دو قسمتش کرد اونو به شونتن اتم. بعد معلوم شد که اطوم ها قابل شکافتنه چون خردها ذره را آواز هم شکافتی ذرهای آدمی، فهناواری ارض کنم که قدیم هم بعضی از فلاسطه از جمعه زیمقراطیست، دیموکریت معتقد بوده که اجسام از ذرات تشکیل شده و ذرات ذرات بالاخره میرسن به جایی که یک ذره ای که طبعا ذهنیست برای اینکه ذره هر قدم کچی باشه باز میشه فرض کرد که میشه تا جایی که قابل تقسیم شدن نباشه او رو در اسطلاحا قدما بهش میگفتن توپار فرض و چیزشم همین تعریفش همین بود که جز الایت اجزا یعنی جز که کسی به اجزایی تخصیم وزیر نباشی اجزه بدین بعد از اینم نبود شایده در جوهر فرد که دهان تو بر این نشته خوش استدادی دهان تو جز الایت اجزای من جاپسوات شما بردم اجزه دی. کمیان نفر باشی گل اجزه رو روشت این ساخته بگنه در این از محوله تحیولات شاعران هست که زرده رو با افتاق مبایسته کرده و منابله کرده و این مسئله اشاره به کردنه احتام نداره برای اینکه اون راهش باید این مطبولشون بده یعنی انشتین که این کار کرده محاسبه کرده به چه نیروی این دوتا رو به هم پیمن میده و اون وقت کرده که باید یه نیروی بیشتر از این باید باشه که این ستیکلو ب دو از از با دیوگرہ کی تو بر از خدا. یک شکر اما مثل جلد این هست یا سوبه و بنابراین پسته شکرین باقت لب محشور میتونه باشی نحافظ متوجه این هم بوده که یا ترشی میتنن. و این باقت لب محشوره که شیرین شکرین پستهه و جس وقت هر مست آوازش کنه بارتون داره اون به دهن در خورند نوشش با, نوشش با. رو مثل یک قابلا توسعه معنی پیاله کوچیک چراغوریه آ یا حد نشابه دیگری که یه بار و یه بار اون مبشید و این تهران در, در خواهی خیلی بزرگ و در سر خط میارن بشینگر این قده حافظ اون قده نیست اینو باید ترکب و به همین دلیله که غالباً به جام شراب جام قده شعای جام قده نور ما یا قده به شرط احسان که ترکیبش تاخیز در جنسی دو بحثن از تو با دونگیم قدرد این چیزی میخوردن نمی واسه دخلی میخوردن بس بس بس و بزرگتر یه چیزی انقدر میتونم عزیز کنم که بکنی مرگی بزرگ و یه کام های مشخوب های توریای خیلی بزرگی تو چند قدره و گردون همش مرگی داشتم پاله تیرمه می و این کرد نرگز دورش شیش دا پر سفیده وسطشم پیاله ایست به رنگهای مختلف زردش از آن خیلی درائجه بلی سیاهاش هم هر که بشمیگن نرگزش این آقای گرامی باید یه بابتی بزنن توی این کتاب های یاشنسی هر با ببینن که انواع نرگست چیا هست؟ آنجایی که من میتونم نرگست مسکین هست نرگست شهلا هست و چیزیای دیگری هم هست، استداهای دیگری انواع نرگست ها رو ببینن اگر اسمایی داریم اونجا و توضیحاتی که هست برواب زش دو درد بار ما بخورد و ما بگن فردن بله چی؟ از سوخه کردم مسکین هستم مسکین هستم نخیر حضبش میخوام بله ولی من کیفیت کم و کیفشو به درستی نمیدونم اینه که خواهش کردنیشون ازداد گردنگ و نبال جناسی مهندسکی شاو از سوینا هستم ازشون بکنم نرگز مسته و چشم رو چشم اون حالت ناز و حالت مخمومی رو داره این است که نرگز مست و اصلا نرگز رو فروته در مقام تشکیب و چشم میگن نرگز مست میگه که رسید آن که از طرف چون نرگز ماست نهت پای قده هر هرکه شش درم دارد درم بود نقرد سفیده شش دام هست اینگه شش درم داشته اینو گذشته پای قده شراب دیم بسید بوسم هایم که از طرف ماست نهت پای قده هر هرکه شش درم دارد نهت درست هم بلکن از جفای خزان بر افتن فقط این پادام داد با هر کس که کنه خون به بگو تو مشهور جهان تو حافظ تلقی بغضت تو در خوشفام حال در که به صورت زینت هم برای مردان در قدیم بوده هست حادشه هم حتی و شاهنامه اگر میگاه کنید جوزی زینت است. حالا, حالا این زینت مخصوص زنان شده به طوری که مردان که مخوان گوشبار رسیم آراسته و که حلقه ایت تو کنان، ارز کنم که قدیم بوده از صورتی دینت مردانه هم بوده بعضها این چیز شده است و هرگر رو که کسی مرد این نشان پتکی ها هیچ اون جنسش فقط این چیزی باید باشی زنگ نزنه زهر نشه از زه او و هرگر برگر که به غلامی یه تو مشهور جهان شد حافظ حلقه بندگی زلف تو در گوشش با بس حلقه یه که میخواد به گوش بفن و غلامی بله حلقه زلف شد و بخواست در ایخ بوده بیشاره <تصفح> بخون خانم زنبان رو فرمید و از به نام کند که Vale, vale. Albatte boss mi vine che tiene molto fatta avvelenisonnara, pantla, tamamen. Olha ta special offer. تو تو تا در اویت خزنده من کمی از اینو باید هم به حاجتت که علاج، گلاب و غند، نباید رو به این دمه دستکار داریم نباید غند، چیز دوسی بکنم و سوقات میوردن از شهری به شهری در مقدمه بوستان، یکی وقت محاسبیت به شیاز یکی به دل گفتم از نسر غند درستان ارمه ها ما یک با در سخنها یکی میگرد که مردم به سودان کورن که معنی به کافت که بزیدان از که گلاب رو هم, هم برای جقع درد سر بکار میبودن سرس خواهانی در اون می آن مثل گوش که تو دیدی خراب شد با نگ به معلوماتش شد یک گل در میانه که فقط درد سر کشی تو بهر ذحت دردسر ما گونام هم برای حیات خاص به طور کلی بوهای خوش اینا رو اثر خوب بر اعصاب اینان فقط برایل علاج گلاب من بعض جای دیگه حافظ توی اون چیزش هسته هایی نوشتی میشه به یام چند محرمی کون که پرستم به تو پیغام چند میگه کند آمی اختباه بول نه علاج دل ما موسی کند یامی به دشنام چند گل کلاب پلخه گل پلخه شکرم چه کند آمی به واغل نه الازه دل ما نوسهی کند یا نیست به دشناه موچند نه. اصلا هم ظاهرن این قضل اخوانی قضل خصوصی است در مقام احوال برسی چیز شده بنده وقتی که ناخش بودن تا از دوستان ایرج بزرستان با دکر خالبی مطلق هر دور نامه نوشتن به همین دوتا بیت خاجر و نوشتن تن از که نازو تجویزان میاز من مبارد. وجود نانازو که چرس من وجود نازو که تازو به یه گذن مباد فلامت هنافا در فلامت توست به هیچ آرزه شخصت تو در من مباد توصیه زیادی بعد این دو تحصیب نسخه با تو خاندالی میخونم میگه بدین چمند تو درایت خزام یقمایی خزان به یزمایی که درست در خزان یزمایی یعنی خزان یزماگر داریم بدین کمند رو در آید خزان یزمایی رشد سر صحیح آمد نبا سر خزان نمیده خزان به همین دلیل هم که میگه که خزان اگه داریم طرف سر را یعنی امیدوارم اگر گرفتاری بود و بوده که ظاهرا مثل که اپیدمی چیزی هم بوده در اون روزگار چون خیلی این گرفتاری ها تا اونو با و, و اون بیماری های اپیدمی خیلی می آمده یه میگه که خذا میراده یعما میکنم از اون روز در برگ زمین یه در حالی که در این چمنت خزان میاده خزان یزمایی خامت بلند راه نرشتی این که حسن تو جلد آغازت مجال تحنه بدین و بدپسند نبا صورت و معنا و امن و زاهر از دو جمع باختن از مجم مرام میگه صوبت و معنی هر دوشون در نفیجه امن تو یعنی که یعنی تحدید نشه از هر در و صحت تو تندرستی تو بنابراین دو نباشه دو یعنی قمدین و اصطلاح حریستان و عشق رو با خارج از حالت آدی باعتن از هوا تران که روی تماه هسته چشم زد بیند الان ما بد رو و بد دین رو دو معنی براش داریم بددین رو به جاری پیسیویست یعنی آدم که زندگی رو کج و بددین کشم بد برای کسی خواهد که چیز ناموزی هستیم یعنی کشم ناخاک داریم مثلا خواهد که داری برای در روزگار خارج بد که یعنی دنبال تیده کردن بعد آدم هستیم روزگاه چودی در میخوان خدمت میکنم می که دیده بذبین بپوشان ای کریمه ای بوش. دیده ای, ای دیده, دیده ای کریم ای دلیری ها که من در کنج خلوت میکنم حافظ همیشه به در میگیدی یه همه مردم دارن این کارایی که دلشون ننخواد اشکرد بفنید و خانش کردن این و سر کردن تو هر سواخی و در این و بیابی کردن مردم بزرگ در کاری که با حدود متحصفان چندی پیش افشاگری و میرفتن درست میکردن و هر سواخی راست همین هم میباختن این کار بدیست وقتی کسی و گناهی پنهان میکرده برای که از این کار شهر دو اینجور بست داره بازار زدن و داره داره داره داره. بعد اینست که میبوید که این دلیری هایی که من در پنج خلوت میکنم این گناههایی که پنهان انجام میدم خدایا کشم دور از اونا بپوچم اینده بدمین بپوچم ای کریم این دلیلی ها که من در کنج خلت می کنم حافظم در مجلسی در بیگشم در مهدلی بینگرین شوکری شوکری یعنی پر روی که چون داخل او سن هنگی بر حال بعد بین به اون معنی هم که رونگ تماه ها به چشم بد بیند یکی هم چشم بعد به معنی چشم دادن و چشمش سوگه اینجا به این معنی است برای اینکه برای دست چشم لخت اسفند می کنید به بهم یک خط می آوردن این مطلب است که ها جوزه خرافات جوزه عقاید آمد جوزه فرهنگ آمد من نمی اثر علمی داره نداره بازم من نمی ولی معتقد قدیم که چشم شور و نظر دادن و اینکه کسی عرض کنند که یه یه چیزی رو ببین و یه نعمی که خیلی متعجب شنن گاهی اینجا به قدیمه اونکرست میشه و معروفه میگیرن که مرحوم دکت فرهاد و ایسه اسفق دانشگاه تیران و نواده فرهاد نیرزای محتمی دو درده از شاهزادکان بسیار فاظل از رفاچه ها میگستن چشم سود به طوری که میگستن مارهان عقود سالدم مثلا میماری خونه یک کسی درختی یا سیای بوچه روز یا نسفران قشنگی بود باید چه درخته مثلا روزی یک مثل فلش خوش میشه حالا این البته یه رفه ممکنه بگن پسادو بوده تلیز. یعنی تصادفه ولی دو دفعه و پنگ دفعه و شیش دفعه و ده دفعه بشه با این که شاید بازم تصادف باشه ولی کم کم این عویده به خودی که ریشه یک هزار سال هم داره تغییر میشه در اشکار و این در قرآن کریم آمده که پیغمبر اکرم رو نظر خدن و بعد آیه معندیتات آمد که به این که پنج یکادو و می‌کندند های یا یا میل به یه رو یه شد، خوش چشم بعد در امان بمونن ولی از لغونه که از زعلقه با سهولام و قاب یعنی چشم ددن و بگفتن که،, که نزدیک شد که کسان که کافر هستن تو چشم بزنن و بگوین که حراین تو دیوانه ای و که نسبت مجموع بودن و مصروب بودن می ددن از وقت در وقت نزول بعد و که از وقت سر یعنی از همه و قش دوچارن که نبودیم این که فرمودن نیست و در هر حال به قیلی که این چیزه و این نیست و این چیز خداییست و آیا آمده که نماشه و هر حال یکی دیگه اففند هم اففند یعنی مقدس او یعنی گواب سپنگ یعنی مقدس و اسپندارمز که حالا ماه به نام اون نام بوداری شده فرشته نگهبان زمین از فرشتگان و یزدگان و اسپنگ یعنی مقدس اون دیار رو میگن برای برای خوش میکنه. پاستش کده و اونها منصال کم کار میوردن میگن حاصیت ضد هم داره من افتیلارم برجه هم اصفند رو خیلی تزمونهای زیادم براش ساخته یکی یکیش از همه جاید زیباتر باشه میدونی که اسفند راست میدونید تو آتیش نیپاره. می میتره که دانه از بخار بشه برن که بودن ساید میگه در آمدن توب مجلس سپن جاید یه پن جا آتش در مجلس سپن چشمی این یعنی همین ما مت چه دلیلی ولی به هر نه نه شور و معنی نداشت فقط این شور بخشی یعنی بسختی یه شور بغو با با حالا چشمی شور البته طبیعی به خصوصا به ایران میشه که به خاصیوبه بیشتر به قرارداد قابل نام با درباره ناخوگی اینا از به های شور نداشته و به همین دلیل همین دلیل بودی که این رو گرفتن کشمی شود برحال براتش توب اینجا به بود و من تصبر میکنم این درسته به جای جان هم چند نفر دارنده ایتش ش Leben ایت نسخه دارده بجوز براتشه جان اوت سفند مواد دو نسخه دارد به بجوز براتشه خم چشم اوت سفند مواد سه نسخه که این چشمه و minute نسخه یه دیگه براتشه تو جزار چشم اوت سفند مواد نسخه خرضینی دارد براتش دو نسخه از سپس سپسشی کی قایس نسخه واقعی تمام چشم در زم حتما در حقاید عوامانونا دیدید که موقع اصفند دردن که ده ترکی چشم حسود و نمیدارن بردو و بردین و نمیدارن برد برد با ده ترکی چشم چشم چور چشم برد چشم بران ده ترکی این از که ده اصفند روی آتیش میترکی در حالی که روان، جان چیز مادیی هست در اینجا میگه هران که روی تماح از به چشم بعد، این چشم این طرف، چشم اون طرف فناسو به خیلی ضریفی هران که روی تماح از به چشم بعد میند، با آخش این تو میجز چشم اون سفه سفر. درسته ایزاید چه picture fashion dans en fait ça est passé à la couraqa 6 et quand après on ne met rien, یک peut juste lire on peut pas le honneur marash on ne peut pas lire tout اسن تا همیشه د چشمی ک نقتنهی در کردن سهر در... در... در... در... با قذا همه دلبران البران پیش علف سبد چون نون بود. این یه این ما، خیلی توضیح نداره در جلسه بعد یه دو سرگه میتونیم و میتونده یه قضا درمین شاهزان خوضال ایتا دو چار، چار، چار، بعد که بعد میاد یکی خوض تو باز یکم دیر ایست که دلدار پیاغ نفرستان آغاز جلسه هشتمه درس هایی از حافظ در خدمت دفتر محمد جفر محجوب پیفلی بحار 1372 چطور دوب... که دوست داریم این کار را انجام دهیم، این کار را انجام دهیم، این اتاق را انجام و کار کار ولی یه خود به دوباره اثر دوره میخونیم یه مقداری از اون مطالب که گفتیم برای که نیمه کاره مونده بود اون مطالب و اگر که هم یه دور دیگه بگیم ضرر نداره هم اینکه در حال برای یه کسانی که تازه میان از بسر توی کردنش جزده نمیشم البته من سعیم رو هم این اختصار هم. اکس روی اکس روی تو بر آیمه یک جام یار بارت می در تمامی اخوامت یار زیبایی ها نگاه این همه زبان همه خواستان ببرید کجا در کجا زده غمش در ذهن ایمان افتاد من به خرابات نخود افتادم این هم از عهد عزل حاصله اینم. اینم از عهد عزل من به خرابات نخود افتادم اینم از عهد عزل حاصله پرجام افتاد چکنه کسه دوران نروید چون پرگاه هر که در زایره یه ایام باید رفت شد کشته او نیک سر انجام نیک سر انجام نیک در می‌دونستم که در کار ما با رو با من دروخته لطفی این که چه شایسته امها مختار آن ان اور یہ باکسسٹس کی نظر باز، ولی زمینیاں مفاضل دل کی بدنامہ ست۔ صوفیان کیوں گمراہی نظر با؟ ظاہر سن، حریف نظر بازم ولی میں رو افتخ مصط بدنام شدم۔ صوفیان کیوں گمراہی پسند نظر با؟ ولی زمینیاں آخذ دل صورت و از نام از که قبلاً حرف بادن و داستان قضیه هم بحثیست که در باره کرده این و ناکرد چند کلمه در جور تجدی بگیم تجدی اصلا در لغت یعنی جلب کردن و صوفیه اصلا معتقدن که افراد همیتون ها هست که همیتون است درستان هر با اونا بی بودن هستیر واقعی ندارن بدون دلخواه خودشون و این دنیا آمدن تصمیم به انتخاب در مادرشون اونا نگرفتن که مادر تصمیم گرفتن ایشون آوردن بدون دلخواه خودشون از این دنیا میرن نه زبانشون خودشون انتخاب کردن من محل پاولدشونو خودشونو خواب من نه سرنوشتشونو خودشونو خواب کردم یک لحظه رو مثل یک جرسهی یا از آتش بپاره و یک لحظه یک نوری از خودش نشون بده و بعد ناهود بشه همه ما یک نموز میده نمود بی خودی و این وجودی که داریم و خیال میکنیم که ما هستیم خب الان حسنی داریم منطقه ها حسنیمون گرفتاریش این هست که مال مدت کتاییم و آدم سنهای بنده که میرسه بیشتره ساخت میکنه که دیگه کم کم بوقعی رفتن نزدیک میشه نه طالب نیست طالب نیست و هر حال هم نگف اگر صد مانی و یکی روز بباید رفتن از این تاخت لفتون و اونی که سنش بیشتر گذشته اون روز رفتن نزدیک اینا و حرف نیست صحبت پیس هالا انشاله من تو خود در این اما چاره نیست میبرن از کنم که ما هستیم اما این هستی در حقیقت اگر گفتم که آتش دره میسوشه یک جرده عزیز یک لحظه روشن میکنه از طرف درسته در حقیقت مثال اون آتش یک میلیون یم یککر سوزن از اون آتشی که پید میگر این هستی که شما الان داریم چه روزی اومدیم و حالا فعلا هستی و همیدیم و وجود داریم این یک پرتویز از وجود اصلی وجود مطلق اون که همیشه هست و اون که همیشه خواهد بود به این چطور باز راه حالا این دو خدا می خواهید وجود می خواهید طبیعت هر هرچی می خواهید مهم نیست برحال که می روید به همه عالمی پرد توییست از اون وجود است و حدیث های داریم یکیش این است که از قول خداوند حدیث هایی که پیغمبر از قول خدا نرمی کنه دوش میگن حدیث قدسی حدیث قدسی یعنی حدیثی که پیغمان به خدا بود پیغمان می فرماید خدا بود که من جنج محکی بودم این بارها تکشار کردیم رفاقا کن می دونم کن تکن زن محکی دیم فا اخبت تو هم اعرف فا سلا فاست من یه جنج محکی بودم می خواستم شناخته مردم رو خلق کردم تا شناختش. از طرف دیگه هم میتونید که حال بشر شاید نهلت خودخواهی شخص فتشمه هست چه این عالم و این دستگاه و این دم و و این زندگی رو برای او خواه کردن حالا کردن نکردن من نمیدونم ولی عملا الان تمام مذایع و مواهب روی زمین به هم این بشره که مورد استفاده قرار میدید از دریا و کوه و زمین و هوا رو همه رو برورداری کرده و حیبونای بسیار گونده این که فیل زیر اطاعت خودش داره برده ازنا علاقه از مراتبه این پار میکشه و به جاهایی رسیده که هیچ حیبونی ایش رفت نرسیده یه ایش نه یعنی تا الان من در با این همه این اتشافاتی که این کشور مرکز اصلی شه و هر روزم منتشر میشه هنوز علم بشری هیچ موتوری رو و بشر یک دوبام این این موتور بشر هنوز به یک از هزار ذرفیتش و دوانایش می که افراد فقط پنج از هوانای مرزشون که تا از دارد حالت دوستان که تا که باید مرزشون با مرزم و نوابق پونزده درستاد در رسید هشتار و پنج از این چه مرزوهای چه این چون توتیگونه فرق داره میره به فرقی نوابیت همه یعنی که دستگاهی بشر <سطور> هم درخورد <سطور> شده اشتر <سطور> محصفات کنه باید هماری کشته تیر مهمی تو مشکوله بنابرای گاهی تو مرزش میده در جمله اون که او رو کرده هم کوشش کنه بشت پشش یعنی اون هفتی که در زمان و در مکان نمی گنجه فرکنه بشت پشش تا این هفتی این قابل گنجش در ذهن منیست بسطورم دادن که شما لاریت راجع به فاقیت خدا راجع و خدا اصلا فکر نکنید اگه میخواد فکر کنید راجع به خود خدا کنه و خدا فکر کنید راجع ذات خدا حالا یک راه را را <تصفح> شما دنیا بالاخره چی بوده از کده اومده این چه این که اینجا درست کرده کیه چیزیه و پیغمبران که محمولا یه وزر دهیر عادی داشتن یعنی از راه دهیر از اون که همه مردم داشتن اینا ارتباط داشتن با عواله مقهی حالا اگه محالفه می کن غشت می کنن خو غشت می کنن غشت یه دهمی نشده رو درد میکردن که ما نمیکن اینجور میگن میگه موسا در خواهد از خدا خود تو من نشون بری جواب خدا تابه بود لند تران هرگز من رو نخورد میگه ولی به اون کو دیگاه خود بعد میگه وقتی که خداوند من جلوه که از بر اون کو من پول پاره پاره چاردم موسا هم پیروش افتاد. این آیه یه بره. بره. خورد میشه نور خدایی که میتابه یا نکی تابیدن حق جمال حق اون تو پاره میشه موقع حالا چه جوری بوده میشه چه من نخوام من منم بسیوانه بس این نوسته انتی وقتی که خداوند من جلوه چه اون یعنی یک گوشه از قدرت شروع موسا نشون دارد و این گفته بود که هر ولی جلوی از هر هم که اون جلوی بود که خورد کرد و مثلا هم جام, جام و جام می در اصطلاحات از به معنی دل آرد سنائی سا خسترین که به یعنی که جام جمع دلید شد جام به با جمع و جامعه هم قبلاً بحث مفصل کردیم از اینکه اون که ما جامعه در شاهنامه فروتی متعلق جمعشیدید متعلق به خیخ خسرو به شرحش در داستان دویجن و میاد پیجن را میکنه پیجن از یه پرم نوه دختری روشن بوده نوه پسری دیگ هم بوده نوه پسری بوده از دونده پسری دیگ هم یک پسری پسر روشن حسین زندنی میشه نم ناراحت بودن و خیلی به عوض بوده و یه دونه بکه بوده و زهرن بوده به یه دونه بکه بیشه توستان چالیس هشیم و گانی پاری و